دو خواهر این داستان را خانم بهناد زاده از همدان نقل کردند. یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود. سالها پیش دو تا خواهر بودند. خواهر اول بسیار مهربون، ساده، دل خوش قلب بود. اما خواهر دوم نه مهربون بود و نه ساده دل و نه خوش قلب از خوبی و مهربونی خواهر اول هرچی بگم کم گفتم هر روز صبح که بیدار میشد مثل گل می خندید مادر که برای خرید بیرون میرفت خونه رو جارو میزد حیاط آب پاشی می کرد لباس ها رو میشست غذا می پخت و همه جا رو تمیز و مرتب می کرد اون وقت خونه برق میزد و بوی گل می گرفت. اما خواهر دوم تا لنگ ظهر می خوابید. نزدیک ظهر همین که فکر می کرد مادرش به خونه برمیگرده اخم بی حوصله از جا بلند میشد روسری سریه کسیف و پارهی به سرش میبست جارو به دست میگرفت و وانمود میکرد تمام کارهای خونه رو اون انجام داده یه روز وقتی خواهر اول همه کارهای خونه رو انجام داد خیلی خسته شد گوشه اتاق زیر آفتابی که از پشت پنجره میتابید دراز کشید و خوابش برد خواهر دوم؟ جارو به دست وسط اتاق ایستاد. وقتی مادر به خونه برگشت با دیدن این وزن ناراحت شد. با خواهر اول دعوا کرد و گفت بلند شو چقدر میخوابی؟ چرا اینقدر تنبل هستی؟ خواهرت چه گناهی کرده که باید همه کارهای خونه را انجام بده؟ بعد سطل آب را به اون داد و گفت زود باش برو چا آب بیار تا خواب از سرت بپره. خواهر اول سطل رو گرفت دلشکسته و ناراحت به طرف چاه آبی که بیرون از روستا بود به راه افتاد وقتی کنار چاه رسید سطل رو با تنابی به ته چاه انداخت اونقدر خسته و ناراحت بود که سرش رو داخل چاه کرد و گفت ای چاه تو تنها دوست من هستی دلم میخواد قصه هامو به تو بگم، به من کمک کن. کاری کن که مادرم متوجه بشه دختر بد و تنبلی نیستم. چاه صدای خواهر اول را شنید و با مهربونی جواب داد. ای دختر مهربون، بیا توی چاه تا کمکت کنم. همین که خواهر اول درون چاه خم شد، نیروی اون رو داخل چاه کشید. وقتی به ته چاه رسید خودش رو درون باغ سرسبزی دید. درخت پرمیوه پر میوه، پر آب زلال، پرنده های خوش صدا، گل های رنگارنگ، صدای شرشر آب رودخونه ها و بوی گل باغ غم و قصر از دلش برد. تصمیم گرفت کمی داخل باغ قدم بزنه هنوز چند قدمی جلوتر نرفته بود که چشمش به تنوری افتاد از تنور دود سیاهی بلند میشد نزدیک تنور که رسید صدایی شنید ای دختر مهربون نون سوختهای توی تنور افتاد اون رو بیرون بیار دودش داره خفم میکنه خواهر اول گفت: «چشم حتما این کارو میکنم. نون رو از تنور بیرون آورد و به راهش ادامه داد کمی که جلوتر رفت صدایی شنید. ای دختر مهربون شاخه هام زیر این همه بار داره میشکنه زحمتی بکش و میوام رو بچین خواهر اول خوب که نگاه کرد درخت سیبی رو دید که پر از سیب‌های قرمز و درشته. شاخه‌های درخت سنگین شده بود و چنتای از اونا هم به طرف زمین خم شده بودند. دختر جلوتر رفت و گفت چشم درخت سیب قشنگ حتما این کار انجام میدم. بعد هم سیب‌های درخت رو چید. وقتی بار درخت سبک شد و شاخه هاش آزاد شدند، دختر دوباره با خوشحالی به راه افتاد. همینطور که داخل باغ قدم میزد، و از اون همه زیبایی لذت می برد، صدای ناله ای شنید. ای دختر مهربون، زحمتی بکش و این تیغ را از پای من در بیارد. دختر با تعجب به دورو برش نگاه کرد شیری رو دید که روی زمین دراز کشیده و از درد به خودش میپیچه جلو رفت و گفت یکم صبر کن الان راحتت میکنم بعد هم آروم و با حوصله تیغ رو از پای شیر بیرون آورد شیر بلند شد و سر پا ایستاد و از اون تشکر کرد دختر دوباره با خوشحالی به راه افتاد کمی که جلوتر رفت به کلبه ای رسید وارد کلبه شد چند بچه قد و نیم قد در حال گریه کردن بودند کلبه خیلی کثیف و آشفته بود دختر دستی به سر و روی بچه ها کشید غذای خوشمزه براشون پخت لباساشون رو عوض کرد و قضاشون رو داد دست و صورتشون رو شست و اونا رو, رو روی تخت هاشون خوابوند و قصههای قشنگی براشون تعریف کرد وقتی بچه ها کاملا به خواب رفتند خونه رو مرتب کرد زرف رو شست شیشه های پنجره ها رو برق انداخت و اتاق رو جارو زد و خلاصه خونه رو مثل دسته گل کرد کلبه تمیز شد و بوی گل گرفت. مدتی بعد که مادر بچه‌ها به خونه برگشت، از تعجب دهنش باز موند. زیر لب گفت: چه خونی تمیزی، چه بوی خوبی، چه بچه‌های خوشگل و آرومی. همین که چشمش به خواهر اول افتاد، فهمید این همه خوبی رو اون به کلبه آورده. بهش گفت آفرین آفرین به تو دختر خوب تو اینجا چیکار میکنی خواهر اول ماجرا را برای زن تعریف کرد زن لبخندی زد و گفت خوب من تو رو کمک میکنم برو بیرون از کلبه کنار رودخونه بشین هر وقت رنگ آب رودخونه طلایی شد من رو صدا کن خواهر اول همین کار رو انجام داد مدتی که گذشت آب رودخونه طلایی شد به داخل کلبه دوید و گفت آب رودخونه تلایی شده زن بیرون اومد و گفت حالا برو خودت رو تو رودخونه بشور دختر خودش رو تو آب رودخونه شست وقتی از آب بیرون اومد موهاش طلایی شده بود و صورتش مثل ماه شده بود اون با اون لباس ها و صورت زیبا مثل فرشته ها معصوم و دوست داشتنی شده بود حتی زن هم از دیدن دختر سر زوق اومد و اونو بوسید و سطل آب رو داخل رود فرو کرد وقتی اون را از آب بیرون آورد سطل پر از طلا و جواهر شده بود سطل رو به خواهر اول داد و به انتهای باغ اشاره کرد و گفت از اون در که بری بیرون به خونتون میرسی تو دختر مهربون و خوش قلبی هستی از این به بعد هر وقت برات مشکلی پیش اومد بیا اینجا پیش من وقتی دختر زیبا با سطل پر از طلا به خونه رسید خواهر دوم از حسودی داشت میترکید از خواهر اول پرسید کجا رفتی چه کار کردی اینطوری شدی خواهر اول هم از روی خوش قلبی و مهربونی از سیر تا پیاز ماجرا رو برای خواهرش تعریف کرد خواهر دوم منتظر نموند سطلی از گوشه حیات برداشت و با عجله به طرف چاه دوید وقتی کنار چاه رسید داخل چاه خم شد و گفت آهای، چاه با تو هستم. زود باش منو به داخل بکش. چاه خواهر دوم رو به داخل کشید. خواهر دوم همین که به باغ رسید، به طرف تنور دوید. تنور به اون گفت: ای دختر، بیا و به من کمک کن. این نون سوختر رو بیرون بیار که دارم خفه میشم. خواهر دوم گفت: چی؟ من دستم رو داخل تنور کنم من این کار انجام نمیدم دستم میسوزه بعد هم دوید و از تنور دور شد کمی که جلوتر رفت درخت رو دید که شاخه هاش زیر بار میوه ها در حال شکستنه درخت سیب از دختر خواهش کرد ای دختر کمکم کن شاخه هام داره میشکنه کمی از بارم رو سبک کن خواهر دوم ابرواش و بالا انداخت و گفت من کاره واجب تری دارم باید برم. خواهر دوم شیر رو هم دید که از درد ناله می کرد. اما به اون گفت من دستم و به پای کسیفتو نمیزنم نمی زنم. می خواستی بیشتر مواظب باشی. بعد هم اونقدر دوید تا به کل برسید. بچه ها گریه می کردند. کل به خیلی کثیف و نامرتب بود. خواهر دوم غذای بدمزهی برای بچه ها پخت. وقتی غذا رو خوردن دل درد گرفتن و اونقدر گریه کردن تا مادرشون به خونه برگشت. وقتی مادر داد و فریاد بچه ها و خونه نامورتب و خواهر دوم و دید حساب کار دستش اومد. به اون گفت برو کنار رودخونه بشین وقتی آب گلآلود شد صدام کن خواهر وقتی آب گلآلود شد زن را صدا زد زن از درون کلبه به دختر گفت حالا داخل آب برو و خودت رو کامل بشور وقتی خواهر دوم از آب بیرون اومد موهاش سفید شده بود، صورتش پر از چروک و لباساش انقدر کهنه و پاره شده بود که دیگه قابل استفاده نبود. نگاهی به سطل آبش انداخت، پر از گل و لجن بود. زن دوباره از داخل کلبه فریاد کشید، انتهای باغ یه در هست. از اون در که بیرون بری به می میرسی. برو و دیگه این طرف آفتابی نشد. دوستای عزیزم داستان امروزمونم تموم شد الهی که همیشه در آرامش باشین